بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون و اگر فرشتگان را بر آنها نازل میکردیم و مردگان با آنها سخن میگفتند و همه چیز را در برابرشان گرد نیاوردیم هرگز ایمان نمیآورند مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشترشان نمی دانند و جعلنا لكل نبی عدوا والشياطين الانس والجن يوحي بعضهم یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء رب ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و این چونین برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که سخنان فریبند و بی اساس به یکدیگر القا القامی کردند و اگر پروردگارت میخواست چنین چونین پس آنها را با تهمت و دروغ واگذار با و الیه و الذین لا یؤمنون بالآخرة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 فلا تكونوا من الممترين ای پیامبر بگو آیا غیر خدا را بداوری طلب کنم و حال آنکه او کسی است که این کتاب روشن به سوی شما نازل کرده است و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم می‌دانند که این قرآن به حق از سوی پروردگارت نازل شده است بنابر این هرگز از تردید کنندگان مباش وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم و كلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید هیچ کس نمیتواند کلمات او را دیگرگون سازد و او شنوای دانا و تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن و هم الا و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی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 به کسانی که از راه او گمراه میشوند تر است و او به هدایت یافتگان نیز تر است و کلوا الله علیه ان <مؤمنین> پس اگر به آیات او ایمان دارید از آنچه نام خدا بر آن برده شده بخورید و ما لكم ان تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم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 و چرا از چیزهایی که هنگام زب نام خدا بر آن برده شده نمی خورید حال آنکه خداوند آن چرا بر شما حرام کرده به روشنی بیان نموده است مگر اینکه ناچار باشید و همانا بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی دیگران را گمراه می کنند بیگمان پروردگارت به حال تجاوزکاران داناتر است و در اثمی و بقینا این الذي کسبون الإث سيوج زون بمکن با تعریفون و گناه آشکار و پنهان را رها کنید هماننا آنان که مرتکب گناه میشوند، به زودی در برابر آنچه چه مرتکب میشوند مجازات خواهند شد ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوكم و این این اینکم لمشرکون و از آنچه هنگام زب نام خدا بر آن برده نشده نخورید و همانا این عمل نافرمانی و گناه است. و به راستی شیاطین به دوستان خود القا کنند تا با شما مجادله کنند و اگر از آنها اطاعت کنید بیگمان مشک خواهید بود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 آنچه که انجام میدادند آراسته شده است. و جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليَمكرو فيها وما يمكرون إلا بأفوسهم وما يشعرون. و این گونه در هر شهر و دیاری بزرگان گناه کارانشان را قرار دادیم تا در آن نیرن کنند ولی نمی دانند که جز با خودشان مکر نمی برزند و اذا جاءت هم آیت قالولا نؤمن حتى الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فشنشان اي براي آنها بيآيد میگویند ما هرگز ایمان نمیآوریم، مگر اینکه همانند آنچه به پیام بران خدا داده شده به ما هم داده شود خداوند آگاه تر است که رسالت خیش را کجا قرار دهد به زودی به کسانی که مرتکب گناه شدند به سزای مکری که میبرزیدند از جانب خدا خاری و عذاب سختی خواهد رسید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 آتش جایگاه شماست جاودانه دارن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد بیگمان پروردگار تو حکیم و داناست و نولی بعض الظالمین بعضاً بی ما کانو و این چونین بعضی از ستمگران را به کیفر آنچه انجام میدادند. به بعض دیگر با می گذاریم یا معشر الجن والانس علم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا <سؤال> شهيدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين اي جروح جن و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 ذلك ألم يكن ربك مهلك غافلون. این بدان سبب است که پروردگارد هیچگاه شعرها را در حالی که مردمش غافل و بی خبر باشند به ستم هلاک نمی کند و درجات من ما وما و ما ربک بغافل عما عم یعملون و برای هر یک در برابر آنچه انجام داده اند درجاتی است و پربردگارت از آنچه انجام می غافل نیست و ربک الغنی ذو الرحمه إِذَا شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَ كُم ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ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 پس آنچه از آن شریکانشان بود به خدا نمیرسید و آنچه از آن خدا بود به شریکانشان می رسید چه بد حکم می و کذالک زینا لکثیر من المشریکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ليردوهم ولیلبسو علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما ما یفترون و این چونین شریکانشان برای بسیاری از مشرکان کشتن فرزندانشان را آراست جلبه دادند تا هلاكشان کنند و آیینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر خدا میخواست چنین نمیکردند پس آنها را با تهمتهایشان واگذار و انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 و نیز چهار پایانی دیگر است که هنگام زب نام خدا را بر آن نمی بردند و با این کارشان به خدا دروغ میبستند و خداوند به زودی کیفر افتراهایشان را خواهد داد.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 قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهام بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 مِنسَمَر إ أثمَرَ وَآتُ حََّهُ لا يحب ك دار بست و بیدار بست.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 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَنیز از چهار پایان حیوانات باربر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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الانسيين أم اشتملت عليه أرحام الانسيين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 اگر راست میگوید از روی علم به من خبر دهید و من الابل ومن و من البقر اثنين. قل اذ ذکرین حرم امی الانثیین اما اشتملت عليه ارحام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 فمن اضطر و غیر باغین ولا عادین فا این غفور رحیم. بگو در آنچه بر من بحی شده است چیز حرامی را که خوردن آن بر خورنده ای حرام باشد نمیابم به جز این که مردار باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خود که پلید است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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا <تصفيق> ان تتبعون الوان الظن و این تو علت به زودی کسانی که شرک ورزیدند میگویند اگر خدا میخوااست ما شرک میآوردیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم کسانی که پیش از آنها بودن نیز این چونین تگذب کردند.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 و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر بینیکوترین وجهی که برای اصلاح باشد تا به سن رشد خود برسد و حق پیمان و وزن را به عدالت ادا کنید ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم و هرگاه سخنگویید یادآوری کنید و یا شهادت میدهید، پس ادالت را رعایت کنید حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد و به عهد و پیمان خدا وفا کنید این است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است تا متذکر شوید و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون و این راه مستقیم من است پس از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده پیروی نکنید که شما را از راه خدا دور میکند این چیزیست است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است شاید پرهیزگار شوید ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم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 و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقو لعلكم ترحمون به این قرآن است پربرکت که ما نازل کردیم از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا مورد رحمت قرار گیرید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 تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو تایف پیش از ما نازل شده بود و ما از خاندن و آموختن آنها بیخبر بودیم او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منهم فقد جاءكم بَيْنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُوءَ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 به عذابی سخت مجازات خواهیم داد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك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 من جاء فله عشر أمثالها ومن جاء فلا إلا مثلها وهم لا يظلمون روز قيامت هر كز كار نيكي آورد.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 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِگو به تحقیق پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است دین درست و پا دین حنیف ابراهیم حق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 وبذلك امرت وانا اول المسلمین شریکی برای او نیست و به این مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم قل اغير الله ابغى ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرتو وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بگو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 بسم الله الرحمن الرحیم. <سؤال> الف لام ميم صاد. الف لام ميم صاد.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 اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم و لا تتبعو من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید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 و چون عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز این که گفتند بیگمان ما ستمکار بودیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ مسلمن ما از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سوال خواهیم کرد و البته از پیامبرانی سؤال می کنیم فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ یقیناً کردارشان را با علم خود برایشان بیان می‌کنیم و ما هرگز غایب نبوده‌ایم والوزن یوم الحق فمن ثقلت موازینه فأولئیک هم المفلحون وزن و سنجش اعمال آن روز حق است پس کسانی که کفیه ترازویشان سنگین است پس آنانند که رستگارند وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ و کسانی که کفه ترازویشان سبکه است، آنان کسانی هستند که به خاطر انکار و ستمی که نسبت به آیات ما میکردند به خیر زیان رساندند ولقد مكناكم مکنناکم فی الارض وجعلنا لكم لکم معایش قلیلا ما تشکرون و به راستی ما شما را در زمین اقتدار دادیم و در آن وسایل معیشت را برای شما قرار دادیم چه اندک شکر گذاری می‌کنید. ولقد خلقناكم خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدو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 ثم لآتينهم من بين أيديهم و خلفهم و وَعَن ايمانهم وَلَا ولا تجد اكثرهم شاكرين. سفاس از روی شان و از پشت سرشان و از سمت راستشان و از سمت چپشان بر آنها میتازم و بیشترشان را شکر گذار نخواهی یافت قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعی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 پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از شرمگاهشان که از آنها پوشیده بود در نظرشان آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نه نکرده است مگر به خاطر این که مبادا با خوردن آن فرشته شوید یا از جاودانان گردید و قاسمهما این و برای آن دو سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم فدلاهما بغرو فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا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 زلنا عليكم لباسا يوري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون اي فرزندان ادم براستی برای شما لباسی که شرمگاهتان را میپوشاند و مایه زینت شماست نازل کردیم و لباس تقوا بهتر است این از آیات و نشانهای خداوند است تا انسانها متذکر شوند ل مى لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه انزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما انه یراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم إنا جعلنا الشیاطین أولیاء للذین لا یؤمنون ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان کند تا شرمگاهشان را به آنها نشان دهد، بیگمان او و همکارانش شما را میبینند از جایی که شما آنها را نمیبینید، براستی ما شیطانها را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمیآورند.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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون بگو پروردگارم به إدالت فرمان داده است و نیز در هر مسجدی و به هنگام هر نمازی روی هایتان را به سوی او کنید و او را به دعا و نیایش بخوانید. در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید همانطور که در آغاز شما را آفرید بعد از مرگ بار دیگر به سویش باز می‌گردید. فریق هدا و فریق حق حق عليهم الضلاله، اِنَّهُمْ اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون أنهم گروهی <تصفيق> و گروهی دیگر گمراهی بر آنها محقق و ثابت گشت زیرا آنها شیطانها را به جای خداوند سرپرست و دوستان خیش برگزیدند و گمان می کنند که آنان هدایت یافتند <تصفيق> آدم خذو زینت د كل مسجد و واشربوا و شرب و لا يحب المسرفين. ای فرزندان آدم به هنگام رفتن به مسجد و در هر نمازی زینت خود را برگیرید. و بخورید و بیاشامید ولی اصراف نکنید بی گمان خداوند اصرافکاران را دوست نمی دارد قل من حرم زینه الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون بگو چ کسيل لباس و زینتهایی را كه خدا برای بندگانش پديد آورده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 و چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت دهید حرام نموده است. ولکل امت اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعتون ولا يستقدمون. و برای هر امتی زمان و مدت معيانی است. پس هنگامی که اجلشان فرار نه لحظه ای از آن تأخیر کنند و نه بر آن پیشی گیرند یا بنی آدم ایما یأتینکم رسل من اینکم يقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و فلا خوف عليهم ولا هم ای فرزندان آدم هرگاه پیام برانی از خود شما به نزد شما بیایند که آیات مرا برای شما بخانند از آنها پیروی کنید پس هر کس که پرهیزگاری کند و اعمال خود را اصلاح کند نه ترسی آنهاست و نه آنان اندوه شوند و الذین کذبو بی آیاتنا و استکبرو عنها اولئیک اصحاب النار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 أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا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 پس چه کسی ستمکار تر است از کسی که بر خدا دروغ می بندد یا آیات او را تکذیب می کند؟ آنها نصیب و بهرهشان از کتاب به آنان می رسد تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگیرند گویند. کجایند آن چیزهایی که به جای خدا می پرستیدید؟ آنها گویند. آنها نابود و گم شدند و بر زیان خود گواهی دهند که کافر بودند قالد خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی كلما دخلت امه لعنت اختها حتى إذا الداركو فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت اخرىهم ربناها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 هرگاه که گروهی وارد میشوند گروه دیگر را لعنت کنند تا هنگامی که همگی در آنجا به هم رسند گروه آخر به پیروان درباره گروه اول و پیشوایان خود گویند پروردگارا اینها بودند که ما را گمراه کردند پس عذابی دچندان از آتش به آنان بده خداوند میفرماید برای هر کدام از شما عذاب دچندان است، ولی شما نمیدانید دانید. و قالت اولهم فما کان لكم علينا من فضل فذوق فذوق العذاب بما كنتم تكسبون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 درهای آسمان هرگز برایشان گشوده نمی شود و به بهش داخل نخواهند شد مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن راید و این چون این گناه کاران را کیفر می دهیم لهم من جهنم بهاد و من فوقهم غواش وكذلك کذلک الظالمین برای آنها بستری از آتش جهنم و نیز روی آنها هایی از آتش جهنم است و این چونین ستمکاران را کیفر می دهین و الذین آمنوا و الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنی. آنها اهل بهشت هستند و جاودان آن خواهند ماند و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار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 و نود ان تلکم الجنت اورستموها بما كنتم تعملون و آنچه از کینه که در سینه است برمی و از زیر درختان و های آنها نرها جاری است و گویند ستایش مخصوص است که ما را به این بهشت هدایت نمود و اگر خداوند ما را هدایت نمی کرد، ما هرگز راه نمی آفدین و فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه به آنان ندا می شود که این بهشت را به پاداش آنچه که انجام می دادید به شما داده اند و عرض بردید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 هاری. پس ندادهنده ای در میان آنها نداد دهد که لعنت خدا بر کاران باد عن سبیل و عوجا وهم همان کسانی که مردم را از راه خدا باز می‌داشتند و آن را کجمی تلبیدند و نیز آنها به آخرت کافر بودند. و بینهما حجاب و الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا و نادو أصحاب الجنة آسلام عليكم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 به بدان در و اذا صرفت ابصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و چون چشمشان به سوی اهل دوزخ گردانده شود گویند باربردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده و انادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم قالوا ما اغنا عنكم جمع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 ااقسمتم لاناعلم الله لا خوف آیا اینها همان کسانی هستند که یاد میکردید که هرگز خداوند رحمتی به آنان رساند؟ به آنها گفته می شود به بهشت داخل شوید نه ترسی بر شماست و نه شما اندوهگین میشوید می شوید و نادا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضو علينا من الماء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 همانطور که آنها دیدار چنین روزی را فراموش کرده اند و آنکه آیات ما را این کار می کردن. جئنهم بكتاب فصلناه على علم هدى و رحمت لقوم يؤمنون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 قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 ثم استوى على العرش يرش الليلا نهار يطلبه حثيثه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 پربرکت است خداوندی که پروردگار جهانیان است. ادعوا ربکم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين پروردگارتان را با تضرع و زاری و در پنهانی بخوانید همانا او از حد گذرندگان را دوست نمی دارد. ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ودعوا خوفا وطمعا اِنَّ رحمت الله قريب من المحسنين و در زمین پس از اصلاح آن فساد و او را بابیم و امید بخانید همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است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 ز به الماء فخرج به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتعلكم تذكون و او کسی که بادها را بشارت دهنده در پیششا پیش باران رحمتش میفرستد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 والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشکون. سرزمین پاکی زگیاهش به فرمان پروردگارش میروید و سرزمین ناپاک جز اندکی ارزش از آن نمی روید. این گونه آیات خود را برای گروهی که سپاس میگذارند، گوناگون بیان می کنین لقد اخسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم الله ما لكم من اله غيره فقال یا قوم اعبدالله ما لکم من اله غیره اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم همان آمانو را به سوی قومش فرستادیم پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید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 به راستی ما تو را در گمراهی آشکار می‌بینیم. قال قوم ليس رسول من رب گفت ای قوم من هیچ گونه گمراهی در من نیست بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم. ابلغكم رسالات ربی و لكم لکم من الله ما لا تعلمون پیام های پروردگارم را به شما میرسانم و شما را اندرز میدهم و از شریعت خداوند چیزهایی میدانم که شما نمیدانید او عجبتم ان.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 قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفه اننا لنظنك من الكاذبين اشراف و بزرگان قوم او كه کافر بودند گفتند بیگمان گمان ما تو را در سفاحت می‌بینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان می‌پنداریم قال یا قوم ليس بسفاهه ولكنني رسول من رب العالمين گفت ای قوم من هیچ گونه سفاهت و نادانی در من نیست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 و شما را در آفرینش فزونی داد پس های خدا را بیاد آورید شاید رستگار شوید قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان يعبد آباؤنا فا بما تعدنا گفتند آیا به نزد ما آمده ای که تنها خدا را عبادت کنیم و آنچرا نیاکان من می پرستیدند رها کنیم پس اگر از راست گویان هستی آنچرا از عذاب الهی به ما بعد می دهی بیاور. قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَرَضَبَ أَتُجَادِلُنَا فِي أَسْمَاءِ سَمِيتُمُهَا سَمِيتُمُهَا أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ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 و قطعنا دابرالذین کذبو بی آیاتنا و ما پس او و کسانی را با او بودند به رحمت و لطفی از سوی نجات دادیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و از مؤمنان نبودند قطع کردیم و الى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غیره قد جاءتكم من ربكم هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آيَهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء الله وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن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 ما به آنچه او بدان فرستاده شده ایمان داریم قال الذین استکبرو آنان که گردن کشی می کردند گفتند ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید منکر و کافرین فَعَقَرُ النَّاقَتَ وَعَتَو عَمْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يا صالح اتنا بِمَا تَعِدُنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتنا بِمَا تعدنا كنت من المرسلين. پس مادش و را و از فرمان پروردگارشان سر سرباز زدند و گفتند ای صالح اگر تو از پیامبران خدا هستی را به ما بعد میدهی بیاور فا اقلت غمر رجفت فی دارهم جاثمین انگاه زلزلهای آنها را فرا گرفت در نتیجه در خانه های خود از پای در آمدند.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 من پیام پربردگارم را به شما رساندم و برای شما خیر خواهی کردم ولی شما خیر را دوست نمی دارید و لوطا قال لقومهی اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین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 بل انتم قوم مسرفون همانا شما به جای زنان با مردان شهوت میرانید به راستی که شما قومی تجاوزکار هستید وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا قَالُوا أخرجوهم مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ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 جز همسرش که از بازماندگان بود و عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين و بارانی از سنگ بر آنها بارانی دیم که آنها را نابود ساخت پس بنگر که سرانجام گناهکاران چگونه بود وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إصلاحها ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ و به مردم مدین برادر شانشو گفت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 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ